اف تیشه سر دبارا بکرش ترجمه مهدی حققت خواه با صدای اکرم پریمون گروه فاطمیه آبانامه با همکاری انتشارات قبلوز. پیش پیشگفتار تفتیش عقاید چه بود تفتیش عقاید موجودیتی یک سویه نداشت صرفاً نوعی بازجویی نوعی دادگاه یا اتاق شکنجه نبود هرچند غالباً تمام این عناصر را در خود داشت. تفتیش عقاید به بیان دقیق‌تر عبارت بود از هیئت‌های داوری بسیار مجهز که کلیسای کاتولیک می‌کوشید از طریق آنها به یک پارچگی اندیشه و عمل دینی دست یابد و آن را حفظ کند. برای این منظور کلیسا به کارگزاران خود که مأموران تفتیش عقاید نامیده میشدند اختیار داد. که کسانی را که ممکن بود اعتقادات یا اعمالشان مقایر آموزههای های کلیسا باشد بیابند. مردان و زنانی که با چون این روبرو روبرومی شدند، زیر فشار قرار میگرفتند تا مجبور به اعتراف شوند. گاهی این فشار جنبه روانی داشت، اما در بسیاری موارد شکنجه شدید جسمانی بود، برخی از این فشارها جان به در می بردند و آزاد می‌شدند و برخی زندانی می‌شدند یا برای اعدام به مقامات کشوری تحویل داده می‌شدند قدرت مقام پاپی دستگاه تفتیش عقاید شامل روحانیان قدرتمند و کارگزاران آنها میشد که نظام بازجویی ها دادگاه ها و زندان ها را که به اداره مقدس مشهور شد اداره می‌کردند دستگاه تفتیش عقاید در قرن سیدهم در فرانسه پا گرفت و در قرون وسطای پسین در سرتاسر اروپا گسترش یافت. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا که از همه بدنا تر بود چندین قرن دوام آورد. اما دیگر دستگاه های تفتیش عقاید در دوره های رونق پیدا کردند. از قرن پانزدهم به بعد، پادشاهان اروپا از دستگاه تفتیش عقاید برای خلاص کردن خود از شر مخالفانی نظیر ژان دارک که نمی توانستند آنها را از راه جنگ یا دیپلماسی خونسا سازند استفاده کردند. هرچند تفتیش عقاید در سرتاسر تا سر تاریخش آلت دست کلیسای کاتولیک بود، کلیسا در نیمه سده شانزدهم شروع به از هم گسیختگی کرد. اما اداره مقدس در زیر اقتدار پاپ در روم باقی ماند. در پایان قرن دوازدهم هم کلیسای کاتولیک به رهبری پاپ که در روم اقامت داشت مهمترین نهاد در اروپا بود. این کلیسا از بسیاری جهات وارث امپراتوری روم شمرده میشد. کاتولیک از واژه یونانی به معنای همگانی مشتق می و به راستی تقریبا تمام مردم متولد اروپا اعضای کلیسای کاتولیک بودند. کلیسا در لوای یک سلسله پاپ های مختدر که در دوره پاپی اینو سوم به اوج رسید به استقرار نوعی پادشاهی پاپی که بر زندگی سیاسی و معنوی اروپای غربی تسلط داشت نزدیک شد. در دهکده های قرون وسطایی، ساختمان کلیسا مهمترین بنا بود. اهالی از صدای ناقوس کلیسا زیاد فاصله نمی و تقریبا تمام فعالیت‌ها از درون کلیسا اداره می شود. مردم در کلیسا غسل تعمید داده میشدند. در سرتاسر زندگی خود شعایر دینی را دریافت میکردند و سپس در زمین وقفی کلیسا دفن میشدند. مسائل حقوقی نیز به ویژه نامهها که مستلزم انتقال مالکیت زمین بود، از طریق کلیسا حل و فصل میشد. اکثر فرصتهای آموزشی از طریق کلیسا ارائه میشد. چون بنا قاعده روحانیون عملا تنها کسانی بودند که می توانستند بخوانند و بنویسند اما قدرت کلیسا در اوج اقتدارش مورد تهدید قرار گرفت در بخشهایی از اروپا کاتولیکها شروع به فاصله گرفتن از آموزه های سنتی دینی کردند مردم معمولی ثروت و دنیاطلبی بسیاری از اعضای سلسله مراتب کلیسایی مثلا اسقفها و کاردینالها را محکوم می کردند در این حال از نبود تقوا و قابلیت‌های آموزشی نزد برخی از کشیشان محلی که در میانشان زندگی می‌کردند نگران و دلخور بودند. چرا نظام پاپی دستگاه تفتیش عقاید را برپا کرد؟ در قرن دوازدهم اعتقاد عمومی بر این بود که تنها یک پارچگی در امور دینی می‌تواند صلح و امنیت را در جامعه اروپایی تضمین کند. از این رو کلیسای کاتولیک دستگاه تفتیش عقاید را برپا کرد تا از آن به عنوان سلاحی برای مقابله با تهدیدهای فرضی نسبت به قدرت معنوی استفاده کند. پاپها متوجه این نکته نیز بودند که شک کردن در های کاتولیکی قدرت سیاسی چشمگیر کلیسا را زائل خواهد کرد. به هر قیمتی که شده باید تهدیدهایی که متوجه قدرت سیاسی و معنوی کلیسا بود، حذف یا خنثا می‌شد. در قرن دوازدهم و طی صدهاهای پیاپی پس از آن، دیدگاه‌های متفاوت در خصوص دین تصور ناپذیر انگاشته میشد. مردم عقیده داشتند که شک کردن در آموزه‌های کاتولیکی به بینظمی و آشوب در زندگی روزمره، مناقشه داخلی، اختشاش اجتماعی و خونریزی منجر خواهد شد. دستگاه تفتیش عقاید به منظور جلوگیری از بروز چنین حوادث فاجعه آمیزی طراحی شد. هدف از تفتیش عقاید به عنوان دستگاهی به ظاهر قانونی که تمام اختیار خود را از روم می گرفت، دفاع از آموزه‌های سنتی ایمانی و اخلاقی مذهب کاتولیک بود. در اصل، دستگاه تفتیش عقاید می بایست وظیفه خود را از طریق اقناع فکری انجام میداد. اما سرانجام رهبران دستگاه تفتیش عقاید برای ترساندن کسانی که گمان می کردند از آموزه های رسمی کاتولیک منحرف شده به مجازات های شدید حتی اعدام از طریق سوزاندن متوسل شدند. مفتش های اقاید که دستگاه دادگاه های تفتیش عقاید را بر عهده داشتند، موظف بودند بدعتگزاری یعنی دیدگاه های دینی مغایر آموزه های کلیسا و بدعتگزاران یعنی حاملان چنین این را پیدا کنند. معموریت مفتش های اقاید این بود که بدعتگزاران را به آغوش کلیسا بازگردانند یا به خاطر خیر بزرگتر یعنی هماهنگی اجتماعی سیاسی و دینی آنها را از جامعه مسیحی ترد کنند. آین کاتولیک در برابر آین پروتستان همچنان که افراد بیشتری همین طور دولت‌های اروپای غربی که به طور فضایندهی قدرت سیاسی بیشتری مییافتند، به چالش با اقتدار سیاسی و دینی کلیسای روم ادامه می‌دادند، روم نیز به مقابله برخاست و دستگاه تفتیش عقاید را برپا تا برای مقابله با بدعتگزاران به اقدامات خشونت دست بزند. کلیسای روم به دستگاه تفتیش عقاید اجازه داد که تا پایان قرن پانزدهم به یک تشکیلات بسیار ثروتمند و به لحاظ سیاسی قدرتمند و دارای اهمیت بین المللی تبدیل شود. با گسترش دستگاه تفتیش عقاید، این تشکیلات هدف اولیه خود را که ترویج ایمان و بازگرداندن گوسفندان آواره به آغول کلیسا بود، به طرز بی‌رحمانه‌ای نادیده گرفت. در قرن پانزدهم دستگاه تفتیش عقاید به خاطر آزمندی، یهودی ستیزی و اعمال کنترل بیهایسال اندیشه بدنام بود. با آنکه تفتیش عقاید اولیه در قرن دوازدهم ریشه گرفت، اما کلیسای کاتولیک تا سده شانزدهم که اصلاحگری پروتستان به مسابح جنبش دینی فراگیر سرتاسر سر اروپا را در نوردید. با مهمترین چالش خود روبرو نشد. کسانی که اندیشه اصلاح کلیسای کاتولیک را پیش کشیدند، میخواستند آن را از ثروتش جدا سازند، تکالیفش را ساده کنند و تشریفاتش را با آنچه به عقیده آنها تکالیف مسیحیان نخستین بود، بیشتر هماهنگ نمایند. اما اصلاحگری به جای اصلاح کلیسای کاتولیک به برپایی مجموعه بسیار متنوعی از کلیساها در جزایر بریتانیا، اروپا و اسکاندیناوی منجر شد. چون این تنوعی از نظر کلیسا قابل قبول نبود و از این رو از تفتیش عقاید به عنوان یکی از قدرتمندترین سلاح‌هایش در مبارزه با اصلاحگری استفاده کرد. کلیسا در پادشاهان کاتولیک اسپانیا استوارترین حامیان خود را یافت. در واقع تفتیش عقاید ترین شکل خود را در اسپانیا پیدا کرد. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا در قرن هم در پیگرد بدعتگزاران حتی از دستگاه پاپ نیز سخت تر عمل می کرد. این دستگاه حتی در پی آن بود که به خلوص خونی دست یابد که تحت تأثیر عقیده روحانیان اسپانیایی در مورد خلوص نژادی بود. پیگیری این هدف به کشتار یا اخراج جمع کسیری از یهودیان اسپانیایی در سال 1492 و بعداً جمع نسبتا زیادی از اعراب مغربی انجامید. تا مدت پس از قرن 16 هم دستگاه تفتیش عقاید به تلاش خود برای کاهش نفوذ کلیسای پروتستان و حفظ سنت کاتولیک رومی و پیروی از آین دیرینه آنها ادامه داد. افزون بر آن دستگاه تفتیش عقاید در مواقع گوناگون از قدرت خود برای جلوگیری از اشائه عقاید علمی که به نظر می رسید با تفسیر کلیسا از کتاب مقدس ناسازگار باشد و برای جلوگیری از پخش عمومی ادبیاتی که گمان می رفت با آموزه های کلیسا در تعارض باشد استفاده می کرد. در حالی که در عصر جدید دستگاه تفتیش عقاید معمولاً از تشویق و اقناع اخلاقی برای حفظ سنت دینی در میان های رومی استفاده کرده است، در اواخر قرن دوازدهم کلیسا بر این عقیده بود که وظیفه عامتری دارد. یعنی باید به صورت نیروی پلیس جامعه برای کنترل سرکشی‌های دینی همهگیر رفتار کند. در قرن دوازدهم بود که تفتیش عقاید آغاز شد.